بنامه می برم به خداوند از شیطانی رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت بارح. ستایش خدای راست پر وزگار عالمیان خدایی که بی اندازه مهربان نهایت باره هست خداوندی روزی جزاست خواست را می پرستیم و خواست از تو کمک می خواهیم به ما راه راست را به راهی کسانی را که بر ایشان نعمت خیش را ارزانی کرده ای نی راهی کسانی را که مورد خشم وادگی شده و نی هم راهی گمراهان